بعد از سوره الم نشرح می خانیم سوره و تین را در اون دو سوره علم نشرح و وضحا تسلی بود برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و همچنین برای مسلمانان بعد از تسلی چون این تسلید بیشتر در مقابل حجمات کفار بود در مقابل بعضی از اعتراضات یا تمسخور و استحضاعات کفار و مشرکین بود که نسبت به آن حضرت میکرد حال مجدد موضوع توهید بیان میشه در اینجا الله تعالی برای توحید چند دلیل ذکر می فرماید در واقع پنج تا دلیل اینجا بیان شده پنج تا دلیل سه تا دلیل نقلی هست یک دلیل واحدی هست و یک دلیل عقلی هست که در این سوره بیان میشه الله می فرماید و ت و الزیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین این در واقع چار تا دلیل هستند چار سوگند هستند اما اشارات اینها دارند این اشارات چهار تا ارز کنم که کتاب را یا چار پیغمبر را اشاره کرده اولین و تین الله تعالی به انجیر سوگند خورده انجیر مراد از انجیر منبت تین هست اون منطقه که در اون منطقه انجیل می روید اون منطقه منطقه شام هست مفسران میگویند و شام مسکن و معوای سیدنا ابراهیم علیه صلات و السلام هست لذا تین ذکر کردن مراد کسی هست که در اون منطقه به عنوان نبی خدا به عنوان دعوتگر بود یعنی ابراهیم علیه صلات و السلام ابراهیم شاهد است و ابراهیم گواه است یا اشاره به صحف ابراهیم است اون که بر ابراهیم نازل شد اون گواه است و زیتون زیتون هم اشاره به خود زیتون نیست گرچه بعضی از علما خصوصیاتی برای انجیر و برای زیتون و بیان کردن اما وقتی که می با اون دو تای دیگه همخانی داشته باشد با تور سینین هاذ البلد الامین اون در واقع اشاره به دو تا محل هست که بر دو تا پیامبر بزرگوار وه میامده پس این دو تا هم اشاره به دو محل هست که بر این دو تا پیامبر بزرگوار وه میامده تین اشاره به شام هست که ابراهیم علیه و السلام بود و زیتون در واقع منبت زیتون هست منبت زیتون در واقع شرق بیت المقدس هست که ایسا علیه صلات و السلام اونجا متولد شدند ایسا علیه صلات و السلام همون بیت لحم هست اونجا درخت زیتون زیاد هست گویا این دلیل نقلی از سیدنا ایسا علیه صلات و هست یعنی وحی که بر ایسا آمده تعلیمات ایسا یا انجیل ایسا او هم گواه هست وطور سینین اشاره به دلیل نقلی از موسیٰ علی صلات و السلام هست یعنی اون محلی که بر موسیٰ علی صلات و السلام وحی می آمده اون محل همچی هست گواه و شاهد هست یعنی وحی بر ایسا وحی بر موسی، وحی بر ابراهیم هاذا البلد الامین این دلیل وحی است. این شهر امین شهر مکه شهری که آغاز وحی با رسول بر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در این شهر بوده و تا سیزده سال در این شهر بر آن حضرت وحی آمده. یعنی گویا این دلیل وحی هست دلیل گرفتن از خود قرآن کریم هست پس الله تعالی چهار پیغمبر را و وحی چهار پیغمبر را اشاره کردند که همه اینها گواه است یعنی تعلیمات ابراهیم تعلیمات عیسی تعلیمات موسی و تعلیماتی که بر شما و آیاتی که بر شما نازل شد همه گواه هستند که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان را در زیباترین اندازه آفریدیم یعنی هیچ مخلوقی از نظر تقویم و از نظر حد و اندازه از انسان زیباتر نیست وقتی که خدا می احسن از همه مخلوقات زیباتر است قال ابن العربی لیسه لله تعالی خلق احسن من الانسان از انسان خلقی زیباتر نداره خود خداوند شاهد گرفته و سوگند یاد کرده به چار چیز که لقد خلق من الانسان فی احسن تقویم این هم مدعای سوره هست و هم بله جواب قسم است. انسان این لطف پروردگار بر انسان است از نظر خلقت انسان زیباترین ترین هست همیشه اینجا یک جریانی را نقل می کنم که تفسیر قرطبی گفته نوشته در زمان یکی از خلافای عباسی که خلیفه یکی از نزدیکان خلیفه و از درباریان خلیفه به نام ابراهیم با خانمش نشسته بود بیرون نشسته بود یک شب بهاری بود و شب بسیار زیبایی بود بیرون با هم نشسته بودند و صحبت میکردند و شب شب چهاردهم بود بدر کامل بود ماه کامل بود ماه را نگاه کرد و از زیبایی ماه شد خانمش هم زیبا روی بود به خانومش نگاه کرد به ماه نگاه کرد به وجد آمد و در اون حالت عشق و وجد به خانومش گفت که الام تکونی احسن من القمر فانت طالق اگر از ماه زیباتر نباشی تو تلاقی خانوم تعجب کرد که این چه کلمه‌ای بود که به من گفت منو گویا داد این خانومش بسیار ناراحت شد نگران شد و فورا ازش کنارگیری کرد و کنار کشید و رفت برای خودش احساس کرد که طلاق شده این بیچاره پشیمان شد نادم شد که اشتباهی عجبی کردم من چرا این جمله را گفتم شب با پریشانی و با اندو خابید و روز بعد پیش خلیفه رفت که دیشب من این جمله را گفتم و تکلیفم چی میشه میگه که خلیفه تمام علماء را خاص اون زمان علماء با نظرات فقهی متفاوت و مختلفی بودند همه علماء این مذاهب آمدند و همه فتوا دادند هر یکی از جم که نشسته بود گفت که خانمش طلاق شده کی میتونه از ماه زیباتر باشه همیشه ماه زربل مسل است اگر یک انسان خیلی زیبارو باشه میگه مثل ماه است مثل ما هست یعنی ما خیلی زیواتری که مثل ما هست لذا خانومش طلاق شد تمام شد و رفت فقط نوشته که یکی از شاگردان ابو حنیفه رحمه الله یک گوشه نشسته بود و او چیزی نمیگفت به او گفتن که خوب شما نظرت چیه؟ گفت که من نظرم را نمیگم گفتن چرا نمیگی؟ شما نظرت را بگو گفت من نظرم با این جم متفاوته با این جم فرق میکنه گفتم باشه فرق بکنه نظرت را بگو دلائلت را بگو گفت من معتقدم که طلاق نشده و هیچ چیزی اون خانم واقع نشده گفتن دلیل چیه؟ گفت دلیلم این آیات هست که خدای تعالی به چند چیز سوگند یاد کرده و فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هر انسان نتنها این انسان هر انسان را خداوند وقتی که فرموده احسن تقویم سیغه اسم تفزین هست نسبت به همه مخلوقات به زیباترین حد و اندازه و زیبایی الله آفریده بقیه و شمس و قمر اونا که تابع ما هستن خادم ما هستن و سخر لکم الشمس والقمر القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار از آیات قرآن معلوم میشه که ارزش انسان زیبایی انسان از ماه و خورشید خیلی بالاتر است میگویند که همه تحسین کردند و دلایل ایشون قانع شدند منظور اینه که الله عز وجل واقعا انسان را نسبت به همه مخلوقات زیباتر آفریده هم انسان زیباتر هست هم اشرف هست چون که همه مخلوقات در بست در اختیار انسان هستند زمین مال انسان، آسمان برای انسان، ماه و خورشید برای انسان هستند. بقیه تمام نظامی که وجود دارد، این نظام شمسی، نظامهای دیگر اینها برای فایده رسوندن، نافرسوندن، خدمت انسان هستند. لذا لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم در زیباترین شکل قرار دادیم. حال ببینید اینکه در جای جای قرآن مجید گفته شده که انسان از همه زیباتر هست دلیلش چی قبلا هم خدمت شما ذکر کردم که نوع خلق انسان و نوع آفرینش انسان اصلا با بقیه مخلوقات فرق میکنه مثلا بقیه حیوانات را شما بگیرید چه چارپاها باشند چه بدون چارپاها باشند خزندگان باشند یا سرشون پایین راه میرند یا شکمشون به زمین چسبیده راه میرند خوراکی که میخورند خوراکشون را نمیتونن مثل انسان به خوبی بخورند خوراکشون را مستقیم با دهان میگیرند و خوراکشون هم خوراک زیبایی نیست هر چیز انسان فرق میکنه امام رازی اینجا بعضی از موارد را نوشته که انسان افضل تره انهو تعالی خلق کل زیروح مکباً على وجهه الا الانسان هر زیروحی را الله تعالی طوری آفریده که او گویا سرنگون هست یعنی سرش پایین هست سرش یا به زمین هست یا سرش پایین هست حالت رکوی داره اما انسان سر بلند هست مکباً على وجهه الا الانسان فإنه خلقه مدید القامح قامتش بلند هست یعنی روی پاست سرش و گردنش از همه بالاتر و بلندتر هست یتناول معکوله بیده هرچی که خوراکیش باشه و خوردنی باشه با دست تمیز میکنه پاک میکنه چه خوراکی انسان داره خوراکش چقدر پاک است چقدر زیبا است چقدر متلون است چقدر خوش رنگ و خوشبو است لذا هیچ چیز انسان با بقیه قابل مقایسه نیست و قال الاسم اسم گفته اینکه انسان زیباتر است فقط از این نظر قد و قواره نیست فقط از نظر قیافه ظاهری نیست بلکه في أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان از همين إن إنسان انسان إنسان هست انسان عقلش كامل تر بغي اصلا عقل ندارند في أكمل عقل وفهم فهمش أدبش علمش بيان ونطقش صحبت کردنش هر چیز الله زیبا قرار داده کدا مخلووق این ویژگی ها را دارد؟ پس انسان واقعا از همه خلائق احسن هست افزل هست اعله هست اوله هست لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم در بهترین حد و اندازه و در بهترین شکل و زیبایی ما انسان را آفریدیم اما این انسان با این جایگاهی که دارد با این رفعتی که دارد متاسفانه راه را اشتباه میبره اون خالقی که او را زیبا آفریده از اون خالق خط نمیگیرد از مخلوق خط میگیرد از دشمن خط میگیرد از شیطان میگیرد لذا وقتی که انسان چنین از دشمن خودش و از شیطان خط میگیرد ثم رددناه و سافلین سپس ما او را برگرداندیم و او را رد کردیم به اسفل سافلین به پایین درجه اسفل صافلین یعنی از درجات جهنم پایین به اونجا انسان را بردیم مگر استثناء از اونهایی که از شیطان خط نمیگیرند و از رحمان در واقع هدایت میگیرند راهنمایی میگیرند هم عقیده خودشون را اصلاح میکنند ایمانشون را درست میکنند و هم عملشون را درست میکنند. اللا الذينا آم وعملوا الصالحات مگر انهایی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام می دهند فلا غیر ممنون برای آنها اجر هست. غیر ممنون یعنی غیر مقتو اجر و پاداششان پایانی ندارد انقطاعی ندارد فما یکذبک بعد بالدین این استفهام است یعنی چه چی چیزی باعث تکذیب تو شد بعد یعنی بعد از این تخلیق پروردگار که خداوند تو را به بهترین و زیباترین وجه آفرید و قیامت را هم برای تو تعیین کرد که تر قیامت تکلیفت معلوم میشه به دین نسبت به روز جزا چی چیزی باید که اون قیامت را تکذیب کنی و اون قیامت را انکار بکنی آخه چرا؟ انسان وقتی که فکر میکند واقعا معقول هم هست که قیامتی باشد اگر قیامتی نباشد پس تمام نظام دنیا بیهوده هست تمام نظام دنیا عبس هست بی فایده هست خدای تعالی این همه انسان پیدا کرده و این همه خلائق برای خدمت انسان زمین، آسمان، خورشید، ستاره ها، ماه دریا، جنگل همه و همه برای انسان خب برای چی؟ که بیان زندگی بکنن تمامش فنا بشه هیچ فائده نشون نخیر باید قیامتی باشه فرق مومن و مشرک مشخص بشه، فاسد و صالح مشخص بشه، یکی چهل سال زحمت خوب کشیده، یکی چهل سال فساد کرده، یکی هشتاس سال کفر کرده، یکی هشتاس سال خدا را عبادت کرده، اینا بمیرند یک سان، هر دو رفتندی خبری نیست، یعنی هر عقل سلیمی هم می طلبد که باید قیامتی باشد، پس چه چی چیز این انسان باعث شد که تکذیب بکنی روز جزاره بعد از این که خدا تعالی تو را آفرید بعد از تخلیق خدا علیس الله به احکم الحاکمی این دلیل این اقلی هست ارز کردم پنج تا دلیل هستند چهار تا گذشتن این پنجمی هست آیا اللہ عزوجل احکم الحاکمی نیست با توجه به این دلائل آیا از همه فیصل کنندگان بهترین فیصل کننده نیست؟ بلا و انا علی ذالک من الشاهدين جوابش اینه که ما وقتی که این آئی را میشنویم بگیم چرا نیست؟ من هم شاهدم من هم بر این امر گواهی میدهند که الله عز و چی هست؟ الحاکمین هست